بسم الله الرحمن الرحیم باب العصبات باب عصبه ها ما قبلن اشاره کردیم که شخص یا سهمش تاین هست در شریعت یا تاین نیست عصبه هست مثلا دختر دختر میت صاحب فرضه یا یک دوهم میبره یا اگر بیشتر باشند دو سفون البته زمان که برادر نداشته باشن چون برادر عصبه هست اونا رو هم عصبه میکنه اونا رو هم چیکار میکنه؟ یا از راه عصبگی رسمی بره، مثل پسر مثل چی؟ پسر. ما صاحب فروز و خوندیم چی کساری از راه فرض و از راه سهم مشخص عرض میبرند تو این درس میخونیم اونایی رو که از راه عصبه یا از راه تعسیب ارث برند اینا عصبه هستن ولی در بحث عصب همانطور طور که در بحث فرض اولویت بندی بود در بحث عصبگی هم اولویت بندی هست مثلا به عنوان مثال شخصی فوت کرده پسر هم عصبه هست برادر هم عصبه هست ولی اینجا موقع پسر وجود داشته باشه دیگه برادر ارث تو این درس ما باید دقت کنیم که کدوما اولویت دارند یعنی اگر از میان عصبه تمام گروه ها مثلا بودند مثلا گروه ها مختلفی بودند خب اینجا شریعت اینا رو اولویت داده از لحاظ جهت، از لحاظ قوت، از لحاظ درجه ها اینا رو چه داده؟ درجه بندی کرده و قدرت دارند تو یک مسئله می میبینیم فقط صاحب فرض وجود داره تو یک مسئله ای میبینیم هم صاحب فرض وجود داره هم عصبه خب اول همیشه سهمیه صاحب فرض داده میشه مثلا شخصی فوت کرده یک زن داره و یک برادر ما ابتدا میایم سهمیه زنش رو که یک چهارم جدا میکنیم باقی مانده رو میدیم به عصبه که برادرشه سلام علیکم و آمدالله خوب الان شروع کنیم توضیح بحث اقرب العصبات البنون نزدیکترین عصبه ها که پسران اینا نزدیکترین عصبه ها که هستند پسران ولا و معهم عصبتون زمانی که پسر وجود داشته باشه عصبه دیگی ای ارز مثلا پدر عصبه است پدر ولی زمانی که پسر وجود داشته باشه پدر از راه عصبگی دیگه ارس از راه فرضش ارس میبره چون پدر هیچ موقع از ارس ساقت نمیشه کسی یعنی از وارسین نمیتونه پدر رو چکار بکنه ولی از راه عصبگی دیگه ارس نمیبره پس از نزدیکترین عصبها پسران هستند و لا معهم اصابتون و همراه با پسران هیچ عصبه دیگه ارس نمیبره و پسران خواهرانشون رو عصبه می کنند اون موقع مثل حظ الانثيين مذکر دو برابر مؤنث میبره مثالشو می زنیم شخصی فوت کرده یک پسر داره با یک دختر این پسر خواهرش رو عصبه میکنه یعنی اگر پسر نمی بود خواهر یک دوم میبرد ولی حالا که برادر وجود داره اثرش کرد یعنی از طریق سهم ارث نمیبره چطوری میبره؟ لذه مثل حضر الانثین مرد و دو برابر زن میدیم زمانی که برادرش اومد خواهرش رو چکار کرد؟ عصبه کرد خب. پس مال و ما میاییم مرد و دو نفر حساب میکنیم به خاطر سادگی زن و یکی سه جاش میکنیم دو جاش رو میبره مرد که پسر باشه یه جاش رو میبره خوهرش لذه کریم مثل حضر الانثین اینه واسقط و تصیب البی والجددی معهم ففارس. مثلا بعد اینه که عصبه بودن پدر و پدر بزرگ همراه با بنون ساقط میشه به فرض یعنی از راه عصبگی ارث نمیبرند بلکه از راه فرض ارث میبرند زمانی که میت خودش پسر داشته باشه این جمله اینو میگه. مثلا شخصی فوت کرده یک پدر یک پسر داره و پدرش یا پدر پدر بهتر بگی، اینجا میگیم پدر صاحب فرسو دیگه از عصبگی پسر بیرورش آورد عصب بودن پدر ساقط شد. تون یه خودش پسر داره پس اول سهم یک ششوم پدر رو جدا میکنیم باقی ماندهش که یک پنجم ماله میدیم بکی به پسر یعنی باقی مانده رو به پسر میدیم پس نازیکترین عصبات البنون بودن، ثم بنو الابنی، يقومون مقامهم ف التعصیب عند عدمهم سپس پسران پسر، سپس کی پسران پسر سر جای پسران قرار می گیرند در عصبه بودن هنگام نبود پسران. شخصی فوت کرده یک پسر پسر داره. و زن داره زن سهمشو میبره باقی مندارو پسر پسر میبره ولی اگر میت خودش پسر داشته باشه دیگه پسر پسر چیزی گیرش چون اولویت بندی هست در عصبه ها در عصبه ها چه هست؟ اولویت بندی هست الا با یک فرق میگه سر جایشون هستن پسران پسر یعنی سر جای پسران هستن پسران پسر الا لا یعصیبون بنات الصلب و این اخواتهم مگر اینکه که دختران خود میت رو عصبه نمی کنند اگرچه که خواهران خود رو عصبه می کنند اما دختران میت رو عصبه نمی کنند مثلا شخصی فوت کرده یک دختر داره یک پسر پسر داره اینجا دیگه. این پسر پسر نمیاد دختر میت رو عصبه کنه بلکه دختر میت یک دومشو میبره باقی مانده رو میبره که پسر پسر اگر اون پسر پسر خواهر داشته باشه اون موقع رو عصبه میکنه و بین خواهر و پسر لذکره مثل حذل اون فیان میشه خب پس نزدیکترین عصبه پسران بودن بعدشون پسران پسر ثم ملعب سپس کی؟ سپس پدر اولو الاصابات بعد البنین و او اولاترین اصابه ها بعد از پسران و پسرانشان پدر هست و يسقط به تعصیب من سواه و ساقت میشه به وسیله پدر اصابه بودن افراد دیگر یعنی جز از پسر که خوبون داستانش جدا بود. پس بعد از پسر و پسران پسر عصب بعدی پدر هست فا لم یکن اخواتون فالجدو اگه اونجا برادری نبود تو اون مسل بعد از پدر عصب کیه جده فا لم یکن اخواتون فالجدو اگر برادری نبود پس کیه پدر بزرگه و این علاه يقوم في تعسيب مقام الق بل و هرچه بالاتر بره این پدر بالاتر با جانشین میشن در تعسيب مقام پدر نزدیک رو ولی یک فرقی با پدر دارن پدر بزرگ با پدر یک فرقی میگه الا الام مگر مادر یعنی یک ای هست در رابطه با مادر که اگر پدر اونجا وجود داشته باشه فرق میکنه با پدر بزرگ اونو میگه الان میگه الا الام جز مادر فان لها مع زوج و او و ثلث ما بقیه بعد فرض الزوج او زوجه و كان کان مکان جد كان کان لها ثلث جمیع المال مگر در یک مساله گفت که ببین اگر برادری اونجا نبود پدر بزرگ جای رو میگیره تی بعد از پدر پدر بزرگ اسبه. چون اگر پدر باشه مسئله جد و پیش میاد که پدر بزرگ مسئله توضیح میده که مسئله چیکار میکنه؟ اشاره میکنه اگر برادری نبود خلاصه بعد از پدر کی اسبه پدر بزرگ ولی میگه در یک مسئله فرق داره پدر بزرگ با پدر اون در مسئله کی هست؟ زمانی هست که در مسئله شخصی فوت بکنه زند شوهر داشته باشه پدر داشته باشه و مادر یا زن شوهر فوت بکنه زن باشه پدر و مادر در این مسئله در این مسئله اگر پدر باشه ابتدا شوهر اگر میت زن بود فوت کرده بود شوهر سهمشو میبره بعد از این که شوهر سهمشو برد مادر یک سوم باقی رو میبره یک سوم کل مالو چون اگر یک سوم کل مالو ببره به اندازه پدر مار میبره که در حالی که اومده مادر کمتر ببره از پدر نه؟ خب اینجا اومدن فقه های بزرگوار از یک سوم کل مال اصل بر اینه که قایده میگه مادر از یک سوم کل مال ببره نه بعد از اینکه صاحب فرض مال خودش برد از باقی مانده ببره ولی به خاطر اینکه از پدر بیشتر نبره اومدن از یک سوم باقی مانده دادن بعد از اینکه شوهر یا زن سهم خودش رو برد پس مسئله از این قراره دقت کن اگر شوهر مرد زن داشت پدر داشت و مادر اینجا زن سهم خودشو میبره مادر از باقی مانده یک سوم میبره باقی مانده رو پدر میبره اگر زن مرد شوهر وجود داشت و پدر و مادر اینجا شوهر سهم خودشو که یک دومه میبره بعدا از باقی مانده مادر رو میدند یک سوام ولی اگر پدر بزرگ وجود داشته باشه این کار نمیشه مادر اون موقع یک ثوم کل مال رو میبره از باقی مانده نه بلکه از کل مال چکار میکنه؟ یک ثوم میبره از کل مال مثلا مثالی میزنید شخصی فوت کرده شخص فوت کرده یک پدر بزرگ داره مادر داره با شوهر با چی؟ ما اینجا شوهر رو میدیم یک دوفم مادر رو میدیم یک سو باقی که مون پدر بزرگ میبره ولی در مسئله اگر به جای پدر بزرگ پدر بود مثلا شوهر یا زن فرقی نمی کنه از این دوتا یکی باشه شوهر بود نمیتونن هر دوتا باشند چون اگه این بمیره اون زنده اون بمیره این شوهر داره پدر و مادر اینجا دیگه شوهر میبره یک دوفم خودش رو دیگه نمیدیم مادر رو یک سفرم از کل ماد. بعد از اینکه این یک دووم مال جدا شد از یک دووم مال باقی مانده یک سفرم میدیم که رو مادر رو ولی با پدر بزرگ این حالت پیش بخاطر این استثناء آورد میگه الا الام جز مادر فان لها میگه مادر همراه در مسلاه شوهر و پدر و مادر یا در مسلاه زن و پدر و مادر برای مادر هست صلف و ما بقیه بعد فرز زوج او الز یک سوم باقی مانده گیر مادر میاد بعد از اینکه شوهر یا زن فرض خودش رو برد همراه با پدر البته همراه با کی؟ ولو کان مکان الابجدون اگر سر جای پدر پدر بزرگ بود کان لها ثلث جمی المال یک سوم کل مال مال مادره پس پدر پدر بزرگ سر جای پدر عصبه میشه ولی با این فرق که در این دو مسئله اینا رو میگن عمریتین دو مسئله اصلا در زمان عمر رضی الله پیشونن در این دو مسئله مادر همراه با پدر یک سوم باقی رو میبره یعنی بعد از این که شوهر یا زن سحمه خودشون بردن ولی همراه پدر بزرگ یک ثومه کله مال رو میبره و ایلم یکون جد اگر جد نبود پس اول بودن فرزندان پسرانشان بعدش بعدش پدر بعدش جد اگر البته برادر نبود و بعدش و ان لم يكن جد فالاخوه اگر پدر بزرگ نبود بعد از پدر کی است برادران فالاخ تو پس برادران هستند یتقدم من کان منهم و ام من کان لاب در بحث برادران اون برادری که پدری و مادری است شقیق هست اولاتر هست از اون برادری که شخصی فوت کرده یک دختر داره یک برادر پدر و مادری داره و یک برادر پدری اینجا دیگه کدوم اسبه اولاتر برادر پدر و مادری اون برادر پدری اینجا ارث نمی بره ثم بنوهم کذالک و این سپس پسران این برادران و هرچه پایین تر برن ثم الاعمامو یتقدمو من کان منهم لابن و امین الا من کان من منهم لاب سپس اموها و در میان اموها اون اموی که از طرف پدر و مادر امو هست اولاتر هست از اون اموی که فقط از طرف پدر امو هست مثلا شخص فوت کرده یک اموی داره که برادر حقیقی پدرش بوده یعنی هم از طرف مادر و هم از طرف پدر برادر پدرش بوده ولی اموی دیگه هست که با پدرش فقط از طرف پدر وصلند این پدرشون یکیه برادر پدرش هست ولی فقط پدرشون یکی بوده فقط چیشون پس اون امویی که از طرف پدر و مادر با پدرش برادر بوده، اولاتره از اون امویی که فقط از طرف پدر برادر پدرش میت بوده. ثم بنوهم يقومون مقام اعمام الاب. سپس فرزندان اموهای پدر و مادری. دقت کن سپس فرزندان اموهای پدر و مادری جای اموهای پدری رو میگیرند اول اموهای پدر و مادری بعدن اموهای پدری بعدن فرزندان اموهای پدر و مادری سر جای کی رو میگیرند اموهای پدری رو ثم بنوهم هم مقامه اعمام للعبائی كلهم و بنوهم سپس فرزندانه فرزندانشان پس توضیح داد دوباره توضیحش بدم چون این جمله جمله مشکلیه ثم بنوهم يقومون مقام اعمام العب سپس فرزندان اموهای پدر و مادری قرار میگیرن سر جای اموهای پدری یعنی فرزندان اونا اولاتر هستند از فرزندان اموهای فقط پدری تا اینجا اولویت بندی الاسباه ها رو توضیح داد از اینجا یه دقیقه کی بکن ثم بنوهم یقومون مقام الاعمامی للآبای کلهم و بنوهم سپس فرزندان اینها قرار میگیرن سر جای اموهای پدران اموهای کی؟ پدران و فرزندانشان یعنی در مختصر مزانی همین جمله رو خیلی ساده تر آورده چون اونجا طولانی توضیحش داده اینجا دیگه مختصر اینجا چی؟ مختصر پس میاد توضیح میده مثلا برادر پدر بزرگ که میشه اموه کی؟ اموی پدر میت دیگه برادر پدر بزرگ میشه اموی پدر میت اینجوری میاد توضیح میده تا میره بالا تا میره چی؟ بالا پس پس فرزندانشان می ایستند سر جای اموهای پدران سر جای چی؟ و پسرانشان و چیاشون؟ علیکم سلام این واو و... عطفه به چی چیزی عطفه؟ عطفه به بنوهم ثم بنوهم به آبا عطف نیست اگر به آبا عطف مود میشد بنیهم میشد چی؟ بنیهم ثم المول المعتق بعد المناسبین اگر اینها نبودند عصبه بعدی المول المعتق اینجا آزاد کننده عصبه آخری است عصبه آخری که؟ آزاد کننده یعنی طرف میت فوت کرده ولی برده بوده که آزاد شده برده بوده که چه شده؟ آزاد. یعنی این عصبه های رو که ما تا اینجا کار ذکر کردیم اینا رو نداشت عصبش که میشه؟ المول الموتق آزاد کننده خودش میگه بعد المناسبین بعد از اون نسبی ها بعد از اون چی؟ یعنی بعد از عصبه های نسبی مولای معتق میشه عصبه ثم عصبته سپس عصبه های این معتق اگر خود معتق نبود خود معتق نبود مشکلی نیست پسرش هست عصبه ها؟ بله. بله. مثلا قشنگی قشنگیه ولی باید دقت بشه. فا ان اونجا یه توضیحی داد در ترتیب ها گفت مثلا بعد از پدر جد اگر اخوه نبود. و در مورد اخوه ها هم گفت و الا لم يكن جد فالاخوه اگر جد نبود اخو هستند منظور این بود که اگر جد و اخوه با هم بودند اینها در یک جهت قرار میگرند اینها همانطور که پسران در یک جهت قرار میگرفتن لازه اصابه بودند پدران در یک جهت اموها در یک جهت برادران خواهران میت با پدر بزرگ در یک جهت قرار می‌گیرند. با اگر اینها هم زمان بودند پس اینطوری نیست که یکی از اینا بر دیگری دیگر اولا باشه آه؟ در یک جهت قرار می گیره اجتمع جد و اخوت و اخوات قاسمهم ما لم تنقص المقاسمة من الثلث فان نقصته فرز له الثلث اگر جمع شده بود در مساله پدر بزرگ و برادران و خواهران مقاسمه میکنه با اونها تا زمانی که از طریق مقاسمه سهمش از یک ثومه مال کمتر نشه شخصی فوت کرده پدر بزرگ داره یک برادر داره با دوتا خواهر با یک خواهر اینجا حلش میکنه برد پدر بزرگ جد اخ اخت این ها شقیق اینجا پدر بزرگ و دو نفر حساب میشه چون لذه کرمه سو حد لنتهینه دیگه برادر هم دوتا خواهر هم یکی اصل مسئله میشه از پنج دوتا رو پدر بزرگ میبره. دو تا رو برادر میبره یکی رو پس اگر سهمیه پدر بزرگ اگر سهمیه پدر بزرگ کمتر از یک سیوم شد اون موقع مقاسمه بشنه نمیدیم. یک سیوم رو میدیم بعدا خواهر و برادره و رو بقیه رو بین همدیگه چی کار میکنن؟ تقسیم میکنن ولی مادامی که تاییه بیشتر از یک سوم گیریش بیاد از راه مقاسم از راه مقاسمه بشمیدی ولی این زمان که در مسئله صاحب فرض نباشه صاحب فرض رو جلوتر توضیح میده پس چه زمان این مسئله به نفع پدر بزرگ تا زمانی که خواهر و برادران بیش از دو برابر پدر بزرگ نباشند آه؟ اگه دو تا برادر حتی میت داشت باز هم اینجا پدر بزرگ بنافش مقاسمه است بنافش هست؟ ولی اگر یک پدر بزرگ و چار تا برادر اه؟ اینجا دیگه که یکی پدر بزرگه؟ همین که یک سیفون ممال بش؟ بدیم و اینجتمع مع الجد وال الاخوات و الاخوات ذو فرزیم اگر جمع شده بود درون مسلی پدر بزرگ همراه پدر بزرگ و همراه برادران و خواهران یک ذو فرزی آ؟ اعطی الجد و الامور داده میشه به پدر بزرگ بهترین یکی از این سه چیز من المقاسمه یک مقاسمه دو ثلث و ما بقیه یا بعد از که صاحب فرز سهم خودش رو برد یک سوما مالو بشمیدیم او سوت سجمی المال یا یک شیشما مال هر کدوم یکی ببین از این سه تا بناف پدر بزرگ بود همونو بشمیدند می مقاسمه آیه برش بهتره اون موقع مقاسمه رو بش مثلا شخصی فوت کرده پدر بزرگ داره یک برادر داره و مادر داره اینجا صاحب فرض دیگه داری صاحب فرض اینجا؟ مادره ببینیم آیا ما اول سهم مادر رو خب 100 درصد جدا میکن یک سوم مادر تمام شده رفت نگاه میکنیم در این مسئله آیا مقاسمه بررف پدر بزرگی یا نه یک سوم کل یک سوم باقی مانده براش بهتره اینجا که دیگه یک برادر فقط وجود داره دی اینجا دیگه یک سوم مواقع براش بهتر نیست چون یک برادر هست چون چند تا هست <تصفح> یا نه یک شیشه به کل مال از کل مال میام یک شد چی کار میکنی؟ میریم هر کدوم به بود اونو بهش تعلق میگیره و يقوم ابو الجد في مقاسمة الاخوه مقام الجد ولا يقوم بنو الاخوه في مقاسمه الجد مقام الاخوه مصلی دی غیر توضیح میده میگه پدر جد در بحث مقاسمه با اخوی سر جای جد قرار میکره. یعنی شخص مرده بود، پدرش مرده بود، پدر بزرگش مرده بود یا پدر بزرگ پدر جد زنده بود. اینجا پدر جد سر جای جد قرار میکره. در بحث مقاسمه با برادرها. ها ولی ولا يقوم بني الاخوة في مقاومة الجد مقام الاخوة. اما فرزندان برادران در بحث مقاومتی مقام برادر قرار نمیگیرند. ایدار رو دیگه سر جای برادره نمی کنیم که بیان مقاصد میببرند و فلانی. ولاي افرزولل اخوات خوب مسائل دیگه ای رو سری بحثای خاص بیشوم داد در این موضوع. آ؟ از اینجا کار به بد توزیم میده. میگه ولاي افرزولل اخوات المنفرداتی مع الجد الا الاکترية اکثریه فرضی تعین نمیشه. سهمی مشخص نمیشه برای خواهرای تنها زمان که خواهر چی بشه؟ تنها بشه برادر همراهش نباشه همراه با جد مگر در مسئله اکدریه و هیا اون مسئله اکدریه افرادش که هستن؟ زوج و امون و اختون و جدون زوج یعنی تو مسئله زوج وجود داره آ دیگه مادر وجود داره دیگه اخت وجود داره دیگه جد وجود داره خب در این مسئله زوج چقدر میبره؟ یک دوم زوج میبره؟ یک دوفم مادر میبره یک سفم چون اینجا فرزندی نداره بیت و برادر و خواهر هم بیش از یک نفر نیستن تا یک نفر برادر داشته باشه و خواهر مادر مون یک سوم میبره عخت چقدر میبره یک دوم چون یک نفره پدر بزرگ چقدر میبره یک شیشم خوب اینجا خواهر داده شد برای خواهر سهم تعیین شد ولی به خاطر هدفی دیگه وگرنه گفته بود که خواهر تنها با پدر بزرگ فرض براش تعین نمیشه فرض براش تاین تا نمیشه جز در مسئله اکدریه در مسئله چی؟ در مسئله اکدریه یک مسئله خاصه اینجا خواهر چیزی گیرش میاد در مسئله اکدریه خواهر چیزی گیرش میاد خب اگر ببین در مسائل غیر اکدریه اگر پدر بزرگ با خواهر جمع شد اونجا مقاسمه گیرش میاد ولی بحث فرض براش تعین نمیشه ولی در مقدریه براش فرض تعیین میشه برای خواهر چی تعیین میشه هم یعنی همون فرضی که خدا براش تاین کرده بشت داده میشه ولی نه این که کامل بشت بدند میخواند یک دیگه رو جلو جلوتر اجرا بکنند و یجمعو بین سهم جد و سهم اخت و هی بین سهم جد و بین سهم خواهر جمع کرده میشه بعد از این یک دوم ما دادیم به شوهر یک سوم دادیم به مادر یک دوم گیر خواهر اومد و یک ششم گیر کی بله مسئله از چند هست از شیش هست از چند هست از تا گیر زوج میاد سه تا، اول پیش میاد اینجا گیر مادر میاد دو تا گیر خواهر میاد سه تا گیر پدر بزرگ میاد یک. مال پدر بزرگ و خواهر با همیشن چار تا با همیشن چار تا ببین، مسئله رو اصل مسئله رو از شش میگیریم تقسیم بر یک دوهم میشه سه ستستاار میبره شوهر 6 تقسیم بر یک سوم مادر میشه دو مادر میبره دو تا رو 6ش تقسیمبر یک دوهم میشه سه ستار میبره خواهر 6 تقسیم بر یک ششم میشه یک که سهمیه خواهر به اضافه پدر بزرگ با هم میشن چندتا چارتا با هم جمعشون کنیمنی چند چون میشن چند میگه میگو ما و بین سهم الجد و سهعمل عخت و جمع میشه بین سهم خواهر و سهم پدر بزرگ که میشه فيقسم بينهما على الى للذكر مثل حظ الانثيين دي بعد زينك با هم جم شدند سهمهاشون انجا مثل حظ الانثيين شكان مشان تقسيم مشان ان اول شده بود ب به نه مسئله از 6 بود آلو من جلوتر توضیح میدم ولی آلو شده بود از 6 به چند آلو آخر در بحث بعدی خودش میاره در بحث اصول فرایز و آلوها آلو ش... اه... مسئله از 6 بود ولی آلو شده بود به نه به چند نه بعدن نیازه به تصحیح داشت از 27 و هفت تصحیح میشد از چند از بیست سه نهتا میشه چند تا؟ بیس و هفتا دیگه سه تا 9 تا یکی سه تا بیس و بس مسئله اول میشه به 27 راحت قابل تقسیم میشه میشن 12 تا سهمیه پدر و مادر از 27 تا که 27 تا رو رو سه جا میکنیم آه چند جا سه جا دیگه برای زکری اون سین پدر بزرگ دو جا میبره خا... ز زن... دخترم هم... خواهر خا... یک جا دوازده که سهمشون شد موبیک مثلا از 27 شد از 9 از 9 4 تا گیرشون اومد از 27 دوازده تا چند تا 12 و سه جا می‌کنیم میشه 8 مال پدر بزرگ و 4 تا ماله خواهر 12 تقسیم بر سه بکن دیگه 4 در میاد نه دو تا چهار رو میبره پدر بزرگ و یک 4 رو خواهر فسيشد از مساله اكداريه ويقوم الاخوة لاب مقام الاخوة لأب و أم إلا في المشركة في المشركة خرار ميجره برادره پداري مقام برادر پدر و مادری مگر در مشرکه مگر در چی؟ آقا در مسئله مشترکه برادر پدری سر جای برادر حقیقی قرار نه. یعنی ما در مسئله مشترکه یا حماریه یا منبریه اسمای زیادی داره حجریه حالا توضیح رو میگم که این اسما رو چرا گفتن یک مسئله وجود داره و هی مسئله مشترک رو دقت کن عبارت از زوج ام اخوان لی دو برادر مادری و اخون لی ابن و ام و یک برادر پدر و مادری مسئله داریم نام شوهر مادر دو تا برادر مادری و یک برادر پدر و مادری مال میت. حالا دقت کن این مسئله فشنگش کجایه؟ در این مسئله زوج میبره نصف زوج میبره چقدر؟ نصف یک دوام مادر میبره یک شیشون یعنی یک زوج میبره سه تا چون یک دوام یک بود مادر یک شیشون برادران مادری که دوتا هستند یک سفم برادران مادری میبرن چقدر؟ یک سوم که همون سهمشون میشه دو که سهمشون میشه چی؟ برادرای پدر و مادری که اصلا چیزی براشون باقی موقعی که از شیش ستا رو برد شوهر یکی رو برد مادر دوتا رو بردند برادرای مادری چیزی باقی برای برادر پدری نیومد اومد خب پدری اومدن پیش قاضی اون وقت حضرت عمر بود گفتم بابا تو اصلا فرض کن ما پدر نداشتیم ولی همان که برادرای مادری ما از این میت ارس ارث بردند از برادرشون ما که مادرشون مادرمون با مادر میت یکی مثل این آقا که مادرانشون یکی ما پدرمون هم با اونها یکیه هم مادرمون اینا فقط مادرشون تو فرض کن پدر ما اصلا حجر بوده نبوده وجود نداشته آ اینجا بود که ما چیکار کردن اینا رو شریک کردن با برادرای مادری این رو خاطرین میگن مشترکی متوجه شدی این مسئله رو پس اصل مسئله از شیش میشه ستا رو میبره شوهر یکی رو میبره مادر دوتا رو ابتدا برادره پدری و مادری که بعدا این برادره پدری و مادری اعتراض کردن اصلا ما پدر نداریم مادرمون که یکی شد با تمام اینا لذا اومدن شریک شدن با برادره مادری پس دوتا رو برادره مادری و اون برادر با هم می باران شریک میشد <تصحیح> که تون قابل تقسیم نمیشه تصحیح میشه از 18 تصحیح میشه چی 9 میدن به شوهر 6 میدن به مادر و 6 تا رو میدن به برادرا که 4 تا رو میبرن برادرای مادری هر دو تا دو تا و اون برادر هم میبره دو تا 6 تا رو با هم میبرن 6 تا رو با هم میبرن وخواینمل عمصر اشار کومافی الاخل اب و اون اطلاعا به اممی. میگه برادران مادری سلس مالو میبرن که شریکشون میشه برادر پدری و مادری از طریق مادرش به خاطر وصل بودن به میه طریق چ وا کار مکانه او اخن لاب اگر در همین مثلله بربرادر پدری وجود می داشت فقط میگه لم وشار کممافی دیگه شریکشون چون اون فقط پدرش با اینه که مادرش یکی؟. به پس برادر پدری این این این مساله رو به خاطر این آورده بود که میگه برادر پدری سر جای برادر پدر و مادری قرار میگیره در نبودنش مگر در مساله مشترکه مگر در مساله چی در مساله مشترکه دیگه اگه برادر پدری باشه چیزی گیرش نمیاد مساله دیگه رو مطرح میکنه میگه و اذا اشتمع اعمال جد اخو لابن و امن و اخو لاب قاسماهو ورد الأخ الاخ لاب سهمهو الأخ لعب, لعب و زمانی که جمع بشه در یک مسلی پدر بزرگ همراه با پدر بزرگ برادر پدر و مادری و برادر پدری و برادر چی؟ پدری میگه قاسماهو اینجا برادر پدری و مادری میان مقاسمه میکنن با پدر بزرگ ابتدا تون زمانی که برادر پدر و مادری وجود داشته باشه برادر پدری ارز نمیبره ولی اینجا به خاطر این که براله پدر بزرگ بشه ابتدا شریک میشه ولی بعدا سهم برادر پدری بب... کدوم برادر داده میشه به برادر پدری میگه زمانی که جام شد هم راه پدر بزرگ یک برادر پدر و مادری و یک برادر پدری برادر پدر و مادری و برادر پدری مقاسمه میکنن با پدر بزرگ. یعنی مال سه جامیشه. چند سه نفرن؟ یکی رو میدن به پدر بزرگ، یکی رو به برادر پدر و مادری، یکی رو به برادر پدری. و رد الأخل اب سهمه آل الأخل ابن وام و باز و و میگردونه برادر پدری سهمش رو بر برادر پدر او. اینجا دیگه برادر پدری بر دو تا بزرگ برد چقدر یکی بله اینو بهش میگن مواده اینو میگام چی ولو کان یک مسئله دیگه ای رو آورده از مسائل خاص ولو كان مع الجدي اخت لابن و امه واخ لابن قاسماه للذكر مثل حظ الانثیین اگر همراه با پدر پدربزرگ خاهر پدر و مادری وجود داشت کی وجود داشت؟ خوهر شقیقه وجود داشت و اخون لعب و برادر پدری وجود داشت و کی وجود داشت؟ برادر پدری قاسم آهو. اینجا هم مقاسمه میکنن با پدر بزرگ لذکری مثل حذل مرد دو برابر کی میبره؟ زن میبره یعنی پدر بزرگ و دو نفر قرار میدند آه؟ اخو دو نفر قرار میدند خواهر و یکی خواهر و چند پس دو سهمو میبره پدر بزرگ دو سهمو میبره برادر یک سهمو میبره کی خواهر ولی خواهر پدر و مادری اینجا در از سهمش چقدره یک دوم در از س... سهمش چقدره میگه اول اینجوری تقسیمش میکنن بعدن اند بعدن... خواهر از برادر پدری میگه تا سهمیش بیک... یک دوم چی بشه تکمیل بشه میگه ثم رد الأخ لاب على الأخ لاب و آن ما يستكمل بهی نصف التركة سپس باز میگردونه سپس چکار میکنه باز میگردونه سپس باز میگردونه برادر برادر پدری بر خواهر پدر و مادری ما یست تکمیل نصف ترکه به اندازه یک نصف ترکه خواهر چه بشه تکمیل بشه و یکون الباقی له و باقی مانده مال کی میشه باقی مانده میشه مال برادرش و هو اش رو ها که همون یک دهه. ئله ببین ابتدا مثلله از 5 ئله ص دوتا رو می پدر بزرگ دوتارو برادر یکی رو کی یکی رو ها دیگه تا رو میبره پدر بزرگ دوتارو رو برادر پدری دو یکی رو خواهر پدر و مادری. یکی رو خواهر شقیق خواهر حقیقی به قول خودمون ولی موقعی که ما بخواییم سهم این دوتار رو نصف بکنیم به خواهر بدیم قابل تقسیم نیست دیگه کنیم در میاد چقدر در میاد اینجاست که مسئله از تصحیح میشه از ده مسئله تصحیح میشه از چند الان رو کاغذ برات بیارمش بله، موقع پدر بزرگ میبره دو تا ابتدا بعدش برادر میبره دو تا و خواهر یک ابتدا بعداً میاند از سهم برادر به اندازه به خواهر میدن که نصف او ببره که چقدر ببره؟ تثیهش میکنن از ده اصل مسئله از بود ازپند تثیر میشن چهارتا رو میبره پدر بزرگ نصف ده چقدره؟ پنج پنجتار میبره خواهر یکی رو از ده میبره کی برادر پدری گفته بود و یکون الباقی له وهو عشرها باقی مانده میمونه برای برادر که همون عشر مالک یک دهم بله این شد از بحث این خیلی طولانی شد